فَإِذَا سَيِّئُوا أَزْدَاهُمْ لَعَصَى لُؤْسَتَهُمْ جَافَرًا سَلَّمُوا اللَّهَ رَحْمَٰنِ رَحِيمٍ سَلَّمُوا اللَّهَ رَحْمَٰنِ رَحِيمٍ سَلَّمُوا در مقام تفریق بین قطع موضوعی صفتی و کشفی مصنف سمنه فاعله که اصلی لسان عدد است در مقام اصفاد عدد لنگ مشخص میکنن آیای ای قطع موضوعی از نوع وصفیه یا از نوع تاریخی. و اگر معلوم شد یکی از این دو قسم خبه اگر معلوم نباشه قواعدی براش هست به که خوندیم و این زهرم دلیل هم. یعنی خود اون قسمی که مطلطه بر علم موضوعی مثل ادراقات ها تب خمفیدیش یعنی یهرمو که شروع زهرم این در این مهمه که با رو برد این میکروپنه کچکی که داشت چی شده این؟ اونو بنابود بده اصلاح کنه اصلاح نشون یا قابل اصلاح نشون این میکروپنه مدرسه به درسه نمیخوره درد اونو آجی در خرابه اونو یادم باشه من میبرم بدم اصلاحش کنم اگه قابل بده تعمیر باشه که یعنی حواس آدم پت میشه به لذت من نمیره بعد ما مطلب بگیم یا حواس اون به گلنگو باشه چیزای خریدن گذاشتن اونجا بدتره دیگه این زهره من دلیل الهود <تصفيق> ان ذهرا من دلیل الهک اعتبار تبارد ان من دلیل الهک اعتبار تبارد که ان ذهرا من دلیل الهک ان ذهرا من من حالا در رابطه با قیام امارات و قطع موضوعی صفتیه اونو بعدا بحث کنم بیدم بحثم در این نیست کما از نا انشار تبر صفت رو قد علا حاضر ما اینه که علم در عدد رکعات از صنف موضوعی وسیع مفروض ما که موازا فرض نو ان تبرس فتنه بعد الهاذا گفته این از نهایت تکنونشاره خود مصنف یعنی عمق اطلاعشه ایشون میگه ما فرض میگیریم اینطوری چون واقعا اینطوری نیست واقعا علم در باب دکاه موضوعی تاریخیه نه میگه فرض میگیریم اینطوری نهایت فقه مصنفه کما اذا فرض ما نا... یه یعنی تمام ادله اون باب رو نگاه کرده دید اینطوری نیست نا... نمیتونه موضوعی ورسی باشه کما اذا فرض نو ان الشارع نه بر از صفه طلقت الاهوال ورسی یعنی موضوعی ورسی اینم یعنی فرد و تقدیره فی حفظ عدد رکعات ثنائيه و ثلاثیه و اولی عین مرکباییه و ان غیره بود. غیر قطع موضوعی وصفی مثل زن به عهد طرفین، مثل اصالت عدم زاید لا یکو او، الا به دلیل خاص خارجی اینا با این نمیتونند نمیتونن باشن و دلیلی هم که بر قیام زن به عهد طرفین یا اصالت عدم زاید به جایی این بعد موضوعی وصفی بخواد دلالت بکنه و اینو اثباتش کنه باید غیر از عدده حجیت مطلق زن در نمازی ها از عدم هر باشه. اونا به درد دلیل خاصی میخواد برای اینکه اثبات کنه زن به هر طرف در خصوص این مورد میتونه با مقام قطع موضوعی وصفی باشه. و عدده اوتیت مطلق زن در نماز که خاید نمید حالا اون یه وجهی داره اونم باز باید بحث کنه چرا باید حتما دلیل خاص خارجی بیاد و عدده اوتیت مطلق زن که خاید نمید حالا منحی سل مجموع ایشون زنون ای رو خود چهت که زن خاص باشه این دلیل خاصی بر اعتبارش رو بشه. باشه در هر مورده باید دلیل خاص خارجی باید باشه ولی عدلده اوچیت قطلق زن این عدلدهش عامه عامه نهایت مفید یک زنده مطلق نوعیه و از بابتونون خاص حساب نشه اوچیتش مشکول که به اون حد اعتبار نیست منحیصون ملیم حالا بحث در اینه که این زنده به احد طرفی که ایشون داره میگه قائم مقام قطع موضوعی وصفی نمیتونه باشی یعنی مخبوض ما اینه شما به عنوان فقی فرض میگی. که قاعدید به این که علم برکات در سناییه، در سلاسیه، در رکت اینه اولایین علم موضوعی وصفیه فرض بگیریم اینطوری قایم مقام داره یا نداره اگر موضوعی وصفی باشه یا قایم مقام نداره حتما باید قطع وجدانی شخص باشه و زن به عهد طرف این مفید نیست آن این یه پیش میاد خب اون قاعده حجیت زنون در نماز اون قاعده چی میشه؟ اینه حتما آقانی ابتاش کنن قاعده داریم در باب نماز به نام قاعده حجیت و زن فسلاکی قاعده حجیت در نماز قاعده تامست به جمله و دو تا ادعا درش هست یعنی متزمن دو تا دعواس دعوای اول وجیت زن در رکعات نماز دوم دعوای دوم حجیت زن در افعال نماز آیا این قاعده تام یا ناتمام وهیطه شمر مقداره این نیاز به بحث مفسوط داره ولی من هم تلویه اشاره بکنم برای اینکه که واضح بشه که این قاعده اگه بخواد تمام باشه فیل جمعه یقینا با این موضوع موضوعی وصفی میشه پس چراشون ایشون بگی نمیتونه علتش چیه ولی بله؟ نرسیدیم نرسیدیم حالا دو تا دعوالو ترک کردیم قاعده پس یکی از قواعد فقهیه که اختصاص به باب داره قاعده حجیت زن زنون حجت فل جمعه یعنی حالا یا مطلق در باب رکعات و افعال یا در خصوص افعال و بعضی ادعا دارن که در باب رکعات هم میتونه باشه بنابرای اونا مطلقا قاعدن ولی اون چیزی که از روایاتشینا استفاده میشه منحیص المجموعی که قاعده حجیت زن در افعال حجیت داره نه در عدد رکات. این چیزی که من بهش مطلبم ولی بحثی که الان میخوام بگم اینه که این قاعده حدیت زن حالا اسمش اومده و باعثشم خیلی طولانیه ولی اینو میخوام بگم که این قاعده مبتلا به چهار تا معارضه یعنی شما فقه و استقرار کنید در باب سلات این قاعده حدیت زن مبتلا به چهار تا معارضه اومده است این چهار تا معارض رو بنویسید که توز ذهن باشه و برای مباحثاتون خوبه قبل این چهار تا معارض رو بگم داخل پرانتز زن دو تا تفسیر داره یک زن در مقابل یقین داریم زن در مقابل یقین خب شامل شک و احتمال مرجوع و احتمال ضعیف هم میشه وقتی میگن زن یعنی چیزی که غیر یقین باشه دوم تفسیر دوم زن در مقابل شک وقتی میگن زن ها چیت داره یا نداره یعنی زنی که در مقابل شک بنابراین زن در مقابل شک شامل شک و احتمال مرجوح و ضعیف نمیشه اون در مقابل شک. اون احتمالات اقوا و رو میگن زن. قاعده حجیت حتییت در سلا زن به تفسیر دومه نه به تفسیر اول وقتی مین زنون در نماز حجیت داره زن در مقابل شک نه زن در مقابل یقین این باید تو ذهن باشه حالا قاعده ی زن در نماز بنابراین که اطلاقش تمام باشه به اختصاص به زمن در عدد رکعات نداشته باشه و شامل حالات و افعال همه ها بشه مبتلا به چهار تا محارز. این چهار تا معارض شما باید تو ذهنتون باشه خلاصی یه روز باید اینها رو حل کنید وقتی میگم بایده زن تیگهت در نماز در نماز به زمون عمل بکنیم به زن اقوا و ارجه عمل بکنیم مبتلا به چهار تا معارضه یعنی از نظر فقیت نه اینکه که عقل ما تراشیده باشه دبایات ما معارض این معاید است با این همه نتیجه نهایی گفتم اینه که زنه در افعال حضیت دارد ولو در دکه ها تو ندارد حالا این شهر تا معارض معارض اول عبر. معارض اولش ادله شک در محله عدله شک در محله یعنی ما در محل شکی ما سه تا محل داریم این تفسیرشو بگرد پیدا کنیم داخل پرانتز جزوه های ما داخل پرانتز آقای می که ما سه تا محل در نماز داریم محل شکی محل صحبی و محل زکری اینا تفسیرشو پیدا کنیم خوبه یه سوال پیش بیاد آدم بره دنبالش اینا رو یاد بگیره خیلی خیلی خوبه من یه زمانی مسئله اینا رو از مرحوم الله اشتهادی رحمه الله علیه پرسیدم و گفتن که نمی‌دونم تو مسئله تو بپرس من جواب بدم یعنی من ممکن که کسی فقیه باشه ولی اصطلاحات رو وارد نباشه اصطلاحات فقیه محل شکی محل ظهری محل صحنی یعنی حالا عند شک در محل انسان در حین قیام که باید قرائت بکنه شک میکنه قرائت دارم یا ندارم محل شکی ادله شکی در محل مختزی بنا بر عدمه آیا من سوره خوندم یا نخوندم خب روکو که نرفتی باید بخونی وارد سوره که نجدی هم رو باید بخونی مختزای عدله شکی در محل بنا بر عدمه در مواردی که انسان یقین به اون فعل نداره خب این معارض میشه با قدریت زمان این یک معارض معارضش ادله شک که در محل که مختزی بنای بر عدمه و اگر بخواد قدریت زن رو ما قبول بکنیم باید به مزنون نم عمل کنیم نه بنای بر عدم پس یکی از قوایی که معارضه اینه این باید حلش کنیم. دوم این قاعده که باز معارضه با اینه منافات با قاعده تجاوز از محل رو داره به بنا بنابا شما به قاعده زن در نماز عمل بکنیم زن ما به این رفته که من این فعل انجام ندادم قاعده تجاوز مگه شون از محل رد شدی بنا رو بزار برای اینکه انجام دادی خب این هم بوده دو ما به زنون عمل بکنیم زن عرژه و عقای خودمون عمل بکنیم یا به قاعده تجاوز عمل بکنیم تجاوز از محل یعنی بعد از این از سجده پا میشه شک میکنه که آیا ذکر سجده رو گفتم یا نگفتم قاعده تجاوز میگه درسته ولی مزنون ما اینه که نگفتیم به زن عمل بکنیم یا برگردیم یا بر نگردیم این منافعات دوم و معارض دوم معارض سوم، عدله بناه بر اکثر امامیه قاعده که در عدد رکعات و چهارم بنا رو بر بین 3 و 4 بناه رو بر چهار، بین 2 و سه رو بر 3 و بین 3 و 4 و پنج بنارو بر چهار، چون 5 مبتل میشه این هم عدله بناه بر که مذهب ما میست این هم با اجید زن داره به که من المحتمر که مزمون ما چهار باشه سه باشه یک از اینها باشه باشه ولی بناه بر اکثر بر خلاف این باشه این هم سوم و معارض چهارم ادله فساد سلاس در موارد عدم یقین در رکعتین این اولایه. یعنی اگر انسان حافظ رکعتین این نباشه نمازش فاسد میشه خب ما به ذنمون اول بکنیم یا حکم به فساد نماز بکنیم ای که میگه در موارد عدم حفظ رکعت این اولایه. نماز فاسده منافات با و اجید زمنه در نماز داره از چهار تا معارض داره در لکت اول و دوم در لکت در موارد عدم حفظ لکت اگر انسان اگه حافظ لکت این نباشه نماز فاسده حالا اون رو ما عمل بکنیم یا به زنمون عمل بکنیم که مظنون ما رکعت اول یا مکر رکعت دوباره کدومش همت بود؟ حالا منحیصل مجموع نیاز به بحث فقهی داره ولی اون چیزی که مرتبط به اصول ما میشه اینه که این قاعد معارض داره چهار تا محارز قوی داره از چهار سنخ روایات یعنی قاعده تجاوز محارز اینه قاعده بناه بر اکثر محارز اینه قاعده وجوب حفظ رکعت این اولاین مخالف با این عدله شک در محل که مختزی بر برعدمه معارض اینه و قاعده که چهار تا معارض اثباتی داره ما چطوری رو این بحث کنیم؟ یکی از بحث‌هاش برای حل تعارض برای حل تعارض راهایی که مرحوم آیگی صاحب جواهر و آیم دیگران پی میکنند برای حل تعارض اینها یعنی نه موضوعاتشون فرق دار. یکی از راحل‌ها اینه که موضوع ما در قاعده زن زن اونا شک یکی از راحل‌ها و که به نظر بدوی این تعارض بین اینها است چهار تا معارض داری اینا باید حل بشه قاعده جیت زن در نماز ما اگر کسی قایل بشه به حجیت قایده تجاوز نمیتونه به زنش عمل بکنیم مظنون من اینه که فشهات انجام ندادم باید برگردم بخاطر که به خاطر اینکه به رکوع رکعت بعدی نرفتم ولی قایده تجاوز میگه نباید برگردم. پس به زن در افعال حتی نمیش عمل بکنیم محارز این داره هم جدیه از روایات در مقام اسباته این یک بحث چهار تا داره. مسئله دوم که خیلی مهمه اونم باز آقاید میگیدی کنن و مرتبط به بحث اصولیه اینه که زن در رکعات اگه حجیت داشته باشه اگر کسی قائل شد به اینکه زن در رکعات حجیت داره و در رکعت اینه اولایی علم علم سفرهی نیست زنم حتیت داره حالا این حجیتی که برای زن در رکعات ثابته آیا مطلبه یا در مواردی که مختزی صحت باشه کدومشه؟ ما بیارم بگیم مقا زن در عدد رکعات مطلقا حجیت داره چه مختزی صحت نماز باشه چه مختزی بطلان نماز باشه یا اینکه نه زن در رکعات حتیتش منحصر میشه به مواردی که اون مزنون ما سر از صحت نماز در بیاری یعنی این قاعده مختصی صحت نماز باشه بله اگر باشه نماز ما رو باطل بکنه در بین رکعت چهار و پنج مزنون ما پنج خوب نماز پنج رکعتی که نداری اگر کسی بخواد به قایده زن در رکعات عمل بکنه باید حکمه به بطلان نماز بکنه حالا این قاعده زن در رکعات مطلقات جیت داره یعنی حتی اگر مختزی بطلان باشه یا نه در خصوص مواردی که مختزی صحت باشه یعنی بین سه و چاره و مزنون ما چهاره خوب نماز باطل نمیشه بین دو و سه مزنون ما سه نماز باطل نمیشه و اگر بخواد مختزی بطلان باشه آیا به قاعده زنده در رکعات میشه میکرد یا نمیشه؟ خب این یکی از بحث های اصولیه. ما به این قواعده که در اصول بست می‌کنیم در چه مواردی عمل بکنیم یعنی محدوده ی حجیتش چه مقداره مطلطه یعنی هرچی مزنون ما باشه تبکون باید عمل بکنیم اگه مزنون ما رکعت پنجامه خب نماز باته اگر چهار نماز سعیه یا اینکه نه مقتضی این مختزای قاعده حدثیت زن در نماز باید خصوص صحت نماز باشه یعنی در موارد که نماز رو تحصیح میکنه بهش عمل بکنیم ولی اگر بخواد نماز رو ابطالش بکنه نه حدثیت نداره حالا اختلافیه این مسئله بین مشهور و مرهوم آقای خویی و تابعینش اختلاف درش هست چی بگیم؟ مثلا اگر شک ما بین چهار و پنج باشه و زن ما به طرف زیاده باشه خبرکت پنجم مزنون ماست بناه بر زن منتج بطلان در این موارد میشه بگیم زن ها چیت داره یا نمیشه بگیم بکر از بحثهای اصولی یعنی بحث ما در حدیت از در زن و امثال اینها در چه محدوده میشه مطلقا قائل بشیم یا نمیشه قائل بشیم این راههایی داره برای اینکه اینا رو کسی کشفش کنه برای اینکه در این مواد مقاعد حجیت مطلب زن باشیم ولو مختصی فساد باشه یا نه زن نه داره که مختصی سهل باشه اختلاف بین مشهور و مرموم آقای خویی یه مسئله رو مراجعه کنه از آقای خویه کیشون قائل شده به اینکه ما یک لوایتی داریم معتبری صفوان دلالت میکنه بر اینکه زن مطلب آقای داره، ولو مختصی فساد یعنی قاعده حجیت زن مطلقا حجیت ولو و فساد باشه و دلیلش معتبره زغن ایشون قائل شده این هم فتوا میده که مزنون شو مارکته پنجم باشه نمازت باطن ولی مشهور میگن نه اگه مزنون مارکته پنجمه بشه اعتنا نمیکنه تو نماز رو نمیشه ابطال کرد نماز رو نمیشه ابطال کرد اگر کسی قائل بشه مثل مشهور، مشهور در مقابل آقای خود. به اینکه ما به قاعده قدیت زن مطلقا نمیتونیم عمل بکنیم ولو مقتدی فساد باشه خب در موادی بین چهار و پنجه به چه قواعدی باید مراجعه کنیم مشهور چی کار میکنن ایشون که میگه رکعت پنجم ها مزنونه و نماز باطله ولی مشروع این هر پر نمیزنن اینا باید چی بگن؟ اونها میگن برمیگردیم به قواعد شکوک چون ما سه نوع شک داریم در نماز شک باطل شک مبتل و شک صحیح شک باطل که خود شک باطله یعنی اعتناعی به اون شک نمیشه کسی رو شک شکش باطله اشخاصی زیاد شک میکنند. متداول در سه نماز شک می کن. در یک نماز سه بار شک میپنن این ها کسی رو شک حساب میشن شکشون هستن این اعتنائی به کسی رو شک نیست و به شکش نیست شک خودش باطله بعضی از شک ها مقتله یعنی شک به وجود بیاد مبتله. در هر شکی که پای رکعت اول در میان باشه شک باطله یعنی اگه بین یک و پنج باشه باطله یک و چهار باشه باطله شک دارم بین رکعت یک و هشت باطله وقای یک در میان باشه شک باطل میکنه یعنی جزه شک شکهای موطل حساب میشه نماز رو باطل میکنه ولی بعضی از شکوف صحیحه یعنی شک ما بهش اعتماد میشه و مقتضی بعضی از, از افعال سرکه سه میخواد نمیدونم نماز احتیاط میخواد چه جایی میخواد بنابر اکثر میخوادم صاد اینا شک های صحیح حالا مشهوری که قائل به عدم حجیت ذن در نماز به صورت مطلق یعنی مطلقا قبولش ندارن نه اینکه بیان بگن مطلقا حجت داره ولو مقتضی فساد باشه در خصوص مواردی که مقتضی صحت باشه درسته ولی که مقتضی فساد باشه ما به این قاعده ذن عمل نمیکنیم برمیگردیم به قواعد شکوک قواعد شکوک یعنی شکوک صحیحه و شکوک معتدله مثلا اگر شک ما در بین چهار و پنج هم. تردید ما بین چهار و پنج خوب نمیتونیم بگیم مظنون ما هم پنج هم. به قاعده حجیت زنده در نماز نمیتونیم عمل بکنیم چون این مقتظی فساده ما به عمل نمیکنیم در این موارد چی بگیم نماز این شخص محکوم به صحت یا محکوم به بطلانه مشهور میگن شک بین چهار و پنج آیا بعد از اتمام سجدتین یا قبل از اتمام سجدتین اگر بعد از اتمام سجدتین باشه جزء شکوک سهیه میشه اگر قبل از اتمام سجدتین باشه جزء شکوک مقتل میشه بنابراین بر به قواعد قواهد شکوک اون قواهد باید امن میشه ولی مرحوم آقای خویی میگه نه قاعده زن در نماز و داره مطلب یعنی ولو مختزی فساد باشه حالا چیه دلیلی براش هست چون که میگه روایات خب روایتی ما در هر بابی روایت داشته باشیم یقینا ده تا روایت ما داریم چیزی نمیشه مستند به روایت کردیم ما روایت معتبری صفحان داریم ده تا مقابلش روایت داریم پس نمیشه یه معیاری میخواد آیا میشه قاعده یه زن در نماز رو به نحو مطلق خود بدونیم معیارش اینه او این کنن. اینه؟ آیا این قاعده که حجیت پیدا کرده در قاعده قاعدتون ارتکازی یا قاعدتون شرع آیا در ارتکاز و در بین اغلام میگن به مزنون عمل بکن؟ که این قاعده ارتکازی باشه طبق همون چیزی که اغلام میگن؟ اغلام میگن بین دوتا اون مزنونش عمل بکن؟ آیا قاعده ارتکازی یا قاعده شرعی اوغلا میگن به یقین عمل بکن به زن و شک عمل نمیکنن شارومدی گفته در نماز به زن نمیتونی عمل بکن پس آیا قاعده شرعیه یا قاعده اکتکازی اوغلاییه مثل خیلی از بحث که در قاعده تجاوز قاعده فرام اینا بحث میشه آیا قاعده اوغلاییه یا او قاعده شرعیه همون بحث سر انجام میاد اگر کسی قائل بشه به اینکه این قاعده یعنی حجیت زنه در نماز قاعدتون شرعیه اگر اینطور باشه امتنانی تسهیلی و ترخیصی شاره برای اینکه بر شما آسون بگیره این اومده کرده برای اینکه منتی بر شما بگذاره نماز شما رو باطل نکنه اینو جعلش کرده شاره در مقام امتنان و تسهیل بر عباد قاعده رو شر کرده این قاعده اینطوری یعنی اگر ماهیتش ماهیت تسهیل و امتنان باشه نمیتونه در موارد مختصی فساد خود جده باشه توی شایی میخواد نواز شما تسهیل کنه نمیخواد که باطلش کنه دوباره آده کن این برخلاف امتنان میشه برخلاف تسهیله تخکیری حساب میشه از اگر قاعده شرعی باشه در مقام تسهیله در مقام امتنانه در خصوص موارد مختزی صحت فقط حدسیت داره چون شعره نمیتونه بیاد شماره نماز شما رو باطلش کنه چون برخلاف امتنان و مفروض که این قاعده قاعده شرحی تسهیلی امتنانیه ولی اگر قاعده ارتکازی باشه قاعده ارتکازی امتنان درش نیست تسهیل درش نیست شاید در اشد انها سختگیری هم باشه ازا مطلقا حدسیت پیدا میکنه درسته اگر کسی بخواد اختلاف بین مرموم های خویی و مشهور رو یعنی شیخ انساری و امثال اینها رو پرلش کنه یه میاری میخواد میار شما چیه؟ آیا این قواعد رو مثلا روایت معتبر صفحان رو مراجعه کنید آیا این قواعده رو شرعی میتونید یا قواعده ارتکازی میدونید؟ در چونکه پرمیدید که اگر در شرعی باشه این جنابی میخوادید یه نقوم مصادره اینکه حالی بله این مصادره است نیاز به حدشیت داره یعنی این باید استاد بشه که هر دلیل اینطوری هر دلیل اینطوری در مقام تصید و امتنان به خاطر که معارضه با چهار تا قاعده است و میخوام اینو قالب کنیم برای چهار تا قاعده که معارضی نیز در, در مقام امتنان شبه شما وارده ولی حل شده هست این, این موارد روشاره میاد خب حفظ رکات و معلوم باشه همه اینا همه میدونن معذالیه معنی گفته زنده در رکا زنه در احوال و کیت داره این برای چیه برای امتنان دیگه آسوم بگیره بر شما در مقام تسلی در مقام امتناع معذالی جای بحث رو داره شاید کسی قبول نکنه قاعده احوال و زن در مقام تصیل باشه قاعده اکتاسی باشه خب دو احتمال در اش ولی خب معیاری برای تشخیص میخواد مطلب سبب که باز مرتبطه به اینجا میشه و نیاز آقایم تحقیق کنن اینه که ما در باب سلات خوب آقایم نفت کنم این ما این که در رسائل داریم میخونیم همینطوری نیست که طبقین ها ما بتون فتوا بدیم یا این بگیم آقا مقام گایم باب قطع طریقه هست یا نیست و طبقین اهلی نمیتونه فتوا بده. اگر کسی در صاحب رو به همین ظاهرش اکتفاق کنه بخواد بده. این در جهل مرکبه اگه خیلی بخوایم خوب تصور کنیم بلده علت نمیشه فتوا بدی روایاتش بحث های دیگه میاد اینا بحث های فردی و سوریه ما میخوام بگیم آقا اگه بحث موضوعی ثقتی باشه قائم مقام نداره اگر تاریخی باشه موضوعیه تاریخی باشه قائم مقام داره الجبینی هم هارو شیخ میگه اخوند در حاشیه رسائل مطلبا گفته قائم مقام نداره در کفایی گفته مطلقا با این مقام ما با این اضطرابات اعلام چه کار اینا اینقدر اضطراب دارن خود شیخ در رسائل و مقاسه بحث میکنه نمیخواد فتوا بده به اونخواد ابحاظش مختلف مستربه پس یه جوانه برو ما باید بدونیم برای کشف از واقعه حالا خیلی از بحث در رابطه با قطعه موضوع یوسفتی ما گفتیم و مرتبط به شروط علمی و کردیم که خیلی قنیمتی آقایگون اونا وقت بذارن باز تطبیقاتی براش میارن مطلب ای که باز اینجا خیلی مهمه مطلب سوم که امروز میخوام بگم. اینه که ما در باب دو دوتا اصل داریم و این دوتا اصل به این اسم در هیچ کتابی ذکر نشده ولی مسلم این در ما یک اصل مصحح داریم یک اصل متمم داریم ما در باب سلات یک اصل مسحیح داریم یک اصل متمم داریم دو دوتا اصطلاحه دوتا اصطلاحه به خیلی اختصاص به باب سلات داریم اگر این دوتا قاعده تمامه خب این حجیت زنده در افعال و رکات چی میخواد بگیرد؟ بنابراین اینها در حواشی خودشون بحثایی این رو داره ما باید واقف به همه جوانه به مسئله باشیم و یقیناً آقا که این که دازار انتخاب میکنن حوصله شو داره. حوصله من که سر نمیگه آقا حوصله داشته باشن برای اینکه به قنق مطلب برزیم دو تا اصل داریم در باب سران اصل مسحه اصل مخ تعریف ظاهری شون. تعریف ظاهری با قطع نظر از مثالی که میخوام بزنم چون در ضمن مثال معلوم میشه ولی حالا تعریف ظاهری اصل مسحه یعنی اصلی که جاری میشه برای نماز ما رو تصیهش کن اون جاری نشه نماز باطل اصل مسحه بشید اصل متمم اصلی که جاری میشه نماز ما رو تکمیل بکنه نماز من بدون تشهد ناقصه بدون یک سجده ناقصه بدون قراعت ناقصه بدون ذکر دوکو ناقصه اصل متمم میاد این متممه ما رو میاده میگه نماز شما تک میده نقصانی نداره ولی اصل مسحه میگه اگه من نباشم نماز محکوم به بطلانه یقینا یعنی زاویه مجرا اینها فرق کنه اصل مسحه در مواردی جاری میشه که پای ارکان در کاره. خوب دقت کنید پای ارکان اگه در میان باشه اصل جاری بهش میگن اصل مسحه ولی اگر پای غیر ارکان در میان باشه اصل جاری رو بهش میگن اصل متمم. اصطلاحه. این اصطلاحات رو آقایون حفظ کنن. میگن من از مرحوم اشتحالی اصطلاح میپرسیدن میگو اینا چیه داری می‌پرسی؟ یعنی پرخاشن میکرد میگو مسئله بپرس من جواب بده مسئله من اینه که مثلا این محل چیه محل زبری چیه و اصل متمم به چی میگن خب یه زمان درسیشون میرفتن یه در رسمتی از دومه رو پیششون خوندن خب فقیه خیلی ماهر ولی اصطلاحات واقع نمید اصل مسحه و اصل مطمئن اصل مسحه مجراش و هیتش ارکان اگه کسی شک در رقو داشته باشه شک در دو هجله داشته باشه شک در قیام قبل از رقو داشته باشه چون قیام بعد از رقو به نظر من را نداره. ندار شک در اصل نیت داشته باشه اینا مجاری اصل مسحه ولی اگه کسی شک در تشهد داره در ذکر ربو داره در احد از سجده این داره در یکی از این واجبات غیر رکنی داره این اصل متمنده حالا در یک مثال این تعریفش و یکه مزرع و جریان این ها در ضمن یک مثال اگر کسی شک بکنه به این نه یعنی علم اجمالی داشته باشه بین اینکه این نماز ناقصه و نقصانش به ترک احد جزئی یا رکوع انجام نداده یا تشهد علم اجمالی داره یعنی یقین دارم بین یکی از این دو تا نیومده یا یک رکوع رو ترک کردن یا تشهد رو نگفتن این نماز محکوم به صحت یا محکوم به بطلانه وقت آیا میشه به مزنون انسان عمل بکنه که قاعده حتییت در زن نماز بیا تیاری بشه بگم من زن به اتیان رو دارم زن به اتیان تشهد دارم یا هر دو برا من مزنونه آیا این ها حتییت داری یا نداره خب این با این قاعده حتییت زن در نماز در تعارضه به خاطر در این موارد که علم اجمالی دارم به ترک عهد جزئین این یکی رکنیه مثل رکوع، و یکی غیر رکنیه مثل تشهد در این موارد های میشه قاعده به بطلان نماز بشه. اول ولی اگر مزنون ما ترک رکوع باشه نماز بازدید ولی مسلم این در فقه ها اینه که این نماز صحیحه لا یسار و الان بطلان بل لا من القول به السلام چرا؟ به خواهد که ما اینجا یه اصل مسحه داریم یک اصل متمم داریم اصل متمم با اصل مسحه تعارض نداره در طول همد. اصلی که در روکو جاری میشه اصل مسحه به خواهد صحت نماز متوقف ولی اینه که روکو داشته باشه اگر نماز علم داشته باشم اینکه روکو نداره یا قاعده این رو برای من اثبات نکنه نماز باطله صحت نماز متوقف بر اینکه روکو باشه از اصل مسح... مسح جاری میشه روکو اثبات میشه نماز تصدیم میشه ولی اصل جاری در طرف تشهر این اصل متممه هم بین این دوتا نیست به خاطر اینکه اگر اصل مسحی رو ما جاری نکنیم بیاییم بگیم اصل متمم رو من میخوام جاری کنم جریان اصل متمم در نمازی که صحت شهراز نشده فایده نداره من بیام بگیم آقا نماز من تشهد داره حالا چه تشهد داشته باشه چه نداشته باشه این نمازی صحت شهراز نشده چون روگو روگو مشکول ای در اجرای اصل متمن در نمازی که صحت شهراز نشده نیست بنابراین اولا و بزار اصل جاری میشه وقتی اصل جاری شد نماز محکوم به صحت میشه لذا دیگه اون علم اجمالی ما منحل میشه علم اجمالی منحل میشه به اینکه من رو کور اتیان کردم بنابراین اون چیزی که یقینا جامونده تشهده و نقصان تشهد مقتل نماز نیست اصل ما رو جاری میکنیم نماز محکوم به صحت میشه و در نمازی که محکوم به صحت باشه علم اجمالی ما منحل میشه به یک علم تفسیلی و یک شک بدوی علم تفسیلی به اتیان رو شک بدوی در عدم اتیان تشهد یا برعکس علا کلال علم اجمالی از بین میره علم اجمالی که از بین رفت نماز محکوم به و یه فقدان تشهد مزهر نیست اشکال نداری این اصل مسحه و اصل متمم اینها در تعارض با قاعده حدیجیت زنه در نماز در تعارض در مقام حتی امتصال اینا رو اشکالش کنیم آیا باز قاعد بشیمه میگه زنده در نماز رو داره یا نداره؟ این سه تا مطلب که امروز گفتیم یکی باب معارضات پایده اون چیت دوم دوم همین مطلبی که گفتیم آیا اینها مطلقا و یا در مواردی مفتزی صحت باشه که همت اون چیت داره؟ و سه که این است و صحیح و متمم و آقاین رعایت اگر اینها این سه تا مطلب واضح باشه ما میتونیم تشخیص بدیم که در این عدد رکعات و افعال نماز آیا زن حجیت داره یا نه آیا حفظ رکعات این اولیه به نوع علم صفتی لازمه یا لازم نیست شما فقط این بحث های اصول که نیست در فقه میخوایم می بگیم اگه بیاید نه این علم موضوعی صفتیه شما که حافظ رکعات نبودی دیگه نماز به بهطلانه خب اون قواعد دیگه رو در فقه چیکار کنیم؟ پس نیاز به اینکه یک اشراف اجمالی به اون چیزهایی که در مقابل این بحث اصولیه یه اشراف اجمالی باشه اون بحث ها رو با این بحث جمع کنید نتیجه جمع بین دو بحث در حضور و فیر این میشه که قطع موضوع صفتی یعنی همون علم بشه و اون اباهه ساتر و امثال این ها اصلا خودش موضوعیت نداره همین که من علم داشته باشم و علم موضوعی طریقی یعنی همون شرط معلوم که تا آخر باید ارام پیدا کنیم یعنی همون چیزی که تفسیر کردیم برای اینکه معارض نشه و اگر در رسائل رو همینطوری بخونیم این فردا معارض می کنیم مثل چیزهایی که در رسائل خونده باقی کجاها بلرس می خوره قطع مو یه ندیگه اونو خود رو مصنفم که تشکیب کرد اونها به درد نمی کن اینطور نیست اشراف اجمالی به هر دو اینته هم حیته اصولی هم حیته فقهی این نیازه برای اونهایی که لقوم و کرد فکر کنید اینها سخت نیست نیازه زندگی برمال خویی رو کسی بررسی کنه از همون این جور خونده و از محالات که کسی یک شبه بخواد تسلط پیدا کنه به همه این مبانی اینطوری و موانی که خود به تأسیس خودشه واقعا از محالات اقلی از نیازه که یه مقدار وقت بذارید آبا این خودشون رو فارغ کنن خیلی از کارهای علکی رو بذارید کنار و همه شله ها رو کم کنید مسافرت ها رو کم کنید بین نکن و بین الله وقت بذارید و این این گفته میشه مطالعه کنید و اونهایی که مصمم این در ساله حتما این دوره قبلی ما رو جزوهای ما رو تهیه کنید فهرست خوبی و از یه طلب برش ددن فهرست هم خودم هم, هم استفاده میکنم و دعا میکنم زحمت کشیدن فهرست زدن برشید اینا رو نگاه کنید مراجعه کنید که رحی ست ساله رو انشالله دو ساله طی کنید بعد از سه سال یعنی وقتی رسائل تمام میشه شما مفتی اعظم باشید انشالله بتونید فتواه بدید بتونید درس خارج بگید یه درست خارج رفتن برای شماها ای حساب بشه این خودتون نپسندید که بخواید دست خارج برید بخواهید خواهید ها رو آقایان ثبت نام بکنن من بیارم بدم تاکسی گرفتن. خامیشه دارید یک حالا تو جایه بازی بودن نمی‌هولد. رو از کجا خودم میارم. یا مصطفی نام اون از اون بگیرید. سی دیای گذشته رو نه من میگم آید